این داستان راه و بیراه این داستان رو خانم آزاده جعفری از اهواز نقل کردند سالها پیش در دشت خوزستان در کنار رود زرد دو برادر به نامهای راه و بیراه زندگی می‌کردند. راه فقیر اما درستگار راستگو و زحمتکش بود اما بیراه ثروتمند متقلب و دروغگو بود یه روز بیراه راه رو سرزنش و مسخره کرد که هنوز فقیر و بیچیز هستی از خوشیای دنیا بی بهره راه خیلی ناراحت شد به بیراه گفت چون درستگار و راستگو هستم یه روز خدا پاداشم و میده بیراه مدام به حرفای اون میخندید و مزخرش میکرد. مدتی بود درده شایع شده بود در شهر مجاور درختیه که گنجی تمام نشدنی پایش پنهان شده. بیراه که تمکار و تنبل و بدجنسم بود با شنیدن این خبر تصمیم گرفت صاحب اون گنج بادآورده بشه. برای همین راه افتاد به طرف درخت. از اون طرف راه که از های بیراه خسته شده بود با خود گفت با توکل به خدا را مییفتم شاید اون گنج رو پیدا کنم با نصف اون گنج به مردم فقیر کمک میکنم و نصف دیگهش رو زمین میخرم تا کشاورزی کنم و به زندگیم سر سامون بدم راه از یک طرف رفت و بیراه از طرف دیگه رفتند و رفتند و رفتند بیراه نزدیک ظهر گرسنه و خسته به قهوه تو اون نزدیکی رسید و اونقدر از غذاهای چرب و شیرین اونجا خورد که اصلا متوجه نشد کی خوابش برد از طرف دیگه راه که تنها نون و پنیری تو بغچه داشت تصمیم گرفت زیر سایه درخت بلوطی بشینه و استراحت کنه اونم کمی از نون پنیرش رو خورد و از خستگی خوابش بود هنوز چند دقیقه نخوابیده بود که حس کرد چیزی دستش رو قلقلق میده از خواب بیدار شد و نگاهی به اطراف انداخت چیزی ندید تنها متوجه سوراخی در دل درخت شد که موشی به اون میرفت و درمی اومد و وقتی که از سوراخ خارج میشد دست راه را می میداد راه که کمی دقت کرد متوجه شد موش میخواد اونو متوجه چیزی بکنه بنابراین دقت کرد ببینه موش چیکار میکنه بعد آروم دستش رو داخل سوراخ کرد دستش به چیز سنگین و نرمی خورد اونو گرفت و آروم بیرون کشید از دیدن چیزی که تو دستش بود تعجب کرد کیسه سنگین کوچکی پر از سکه های طلا چیزی که میدید رو باور نمی کرد اما حقیقت داشت بیراه با عجله از راه رسید و در یک چشم به هم زدن کیسه رو از دست اون قاپید و ادعا کرد که کیسه اون به دست آورده اما راه که درستگار و راستگو بود به بیراه گفت اگه میگی این کیسه مال توه مانعی نداره اما بزار از درخت بپرسیم این کیسه مال کدوم مونه هرچی درخت گفت قبول میکنیم بیراه که ناباور و گو بود قبول نکرد به مگو بین اون دوتا بالا گرفت مردم دورشون جمع شدن و به ماجرا پی بردند قرار بر این شد که از درخت بپرسن کیسه به کدوم برادر تعلق داره یکی از اهالی گفت ای درخت به ما بگو این کیسه زر مالکیه بعد از مدتی صدایی از دل درخت شنیده شد که میگفت خدا به همه بندگان درستکارش پاداش میده و این کیسه زر پاداشی به درستکاری و راستگویی راه سپس درخت به بیراه گفت راست رو راست که سرور باشی در حساب از همه بهتر باشی بیراه که مجبور بود حرفهای درخت را قبول کنه از رفتار شرمگین شد و اونجا را ترک کرد و از اون موقع تا به حال کسی اون رو ندیده اما راه که به فکر دیگران بود نیمی از سکه های طلا رو بین مردم تقسیم کرد و باقیش را زمینی خرید و کشاورزی کرد و عمری طولانی رو بین مردم به سلامتی و خوشی گذارند مسئله ما راست بود هرچه خدا خواست بود